در باقوهش قلقی بچه چشم خود میبینند و رکاسی میکنن و نام الله جلجا جل لحوره به زبان خود میارند با و شما دیدیم اگر در جریان ازید دقیق شده باشین که این با گفتن نام الله چقدر سرزی فشار میهه این ثابت میسازه یعایت ای قرآنه که لو انزلنا نهاز القرآن علا جبل لرا ایدهو خاشم من خشیت الله اگر این قرآن ما نازل میکردیم بالای کو شما ایک کوها را میدیدن که بسیار با خوش و توازو و متصدی ان صدا یعنی گنگس و گیج صدا در عربی سردردی میگن که سرسان در کنا بسیار آفاده چیز کلگک بزنن سردردی زیاد یعنی کوه ها به حالت لرزه و تکان میامدن این است که خداوند را کرامت داده و عزت داده که نام الله جل جلاله را میگیره و برازی با ذکر و یاد خداوند اطمینان قلبی پیدا میشه درس امروز ما و شما این معنای یک مقدمه خدمتان تقدیم کردم که ما عنوان درس امروز ما است دلایل علمی به وجود خداوند متعال جل جلاله دلائل علمی ما شما که خداوند مطالب جل جل همه ای که انما یخش الله من عقاده از خداوند در میان بنده های خدا علما زیادتر از خدا میترسند ای علما تنها علمای تنها علمای شریعت و اسلام نی بلکه هر عالمی که در هر تخصصی که او را واقعاً عالم ساخته باشه واقعاً عالم باشه یکی است که یک ادعای علمیت میکنه که من متخصص هستم اما یکی که او حقیقتاً عالم است. علمی که در سر از او نزده چرا که علمگر در سر زند ماری شود علم اگر در دل زندت یاری شود او کسانی که تعصب دارند و اعضای بدن از اینا پر از میکروب های مختلف شدن اینا اگر چیز را یاد هم میگیرن علمشان برشان مار میگردن چرا؟ باران که در لطافت طب اش خلاف نیست در دشت لاله روید و در شورزار خس باران این باران است لکن در یک جای می میبینیم که گل لاله روی میترد در جای دیگه میبینیم که برعکس خاص و خاشاک است در یک کوچه بغیر از گل لائه و گندگی و مرداری و بوی این باران در اینجا مرداری رو داد و در اونجا گل لاله رو آورد مشکل در زمین است که کدام زمین زمین پاک است و کدام زمین زمین مردار است از ای خاطر اولمه که تعصب نداره اولمه هایی که قبلا روزمدکسن گفتم یک نفر یک کامپیوتر داره کمپیوترش چلو جیبی داره کل بزیه از ویروس پر است به اون که هر قدر فائل های نو بخوای که در کات کنی و در پست کنی نمی پذیده از یک کسی که مغز و دماغ خود از مرداری ها و کسافت ها پر کرده قرآن هده للمتقین است متقی کیست؟ این متقی است که از تعصبات و از خواهشات نفسانی ولی که ایمان نداشته باشه خودا لقایه کرده از جراثیم و میکروب ها بایدانستن حق به با قرآن سر تسلیم میگذارن و هدایت میشه اما انسان ولی که مسلمان باشه تمتعصب باشه بالاخره بیدین و گمراه میشه کسی گفت انا خیر منه بازگو کرد بهتر ترستم او باز هدایت نمیشه امروز ما شما میبینید که خداوند متعال جل جلاله میگه که سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی هم انسان دلایل قدرت خداوند و دلایل با وجود خداوند متعال جل جلاله را بد طریق آافاق که در جهان بزرگ یعنی طبیعت و فی انفظ هم در جهان کوچک یعنی وجود خود انسان نگه مادللایل قدرت خداین آنشان میدیدین. ببینین و می طرف طبیعت تا قدرت خداونده ببینین و ببینیم به طرف جسم خود تا قدرت خداونده ببینید و ایمان برین. وحلل يا سب الذين يعلمون والذين لا علمون خداوند نگه به پیغمبر صلی الله علیه و به ما که قرآن میخوانیم و ترجمه و تفسیر میکنیم میگه بگو بر از این مردم او مردم آیا انسانهای با دانش عالم با انسانهای جاهلی که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 در کار میفردن و امروز با شما می‌بینیم که بسیاری از علما هستند که با دیدن حقیقت‌های خداوند متعال جل جلوه ایمان آوردن کشش میگرم این دلائر از غیر مسلمان از غیر مسلمان را اول ذکر بکنیم که او کسانی که بسیاری کسانی که فکر میکنن که با خدا در غرب کلگی از وجود خداوند منکر هستند، نه خیر برادر عزیز تو که فامی، و اون کسی که قرآن نمی خوانه و اون کسی که از علم خود استفاده نمی کنه و اون کسی که استعمارگر است از حق منکر میشه حق حقم نمیخواد نمی بیان بکنه و اون کسی که تحت استعمار قرار گرفته و شخصیت خود از داده، قایده جیب یکی فروخته میشه شه قایده جیب دیگه خدا می پرده این انسان از وجود خداوند منکر می شه اما علما ها دانشمند شخصیت بزرگ. بزرگ. اونا رو ببینیم که با وجود ذات از زوجال اقرار و اعتراف میکنند. اسم از قول هرچال که یک دانشمند است میگه چی میگم میگه هرچی دامنه علم گسترش شابد دلایل محکم برای وجود خداوند ازالی که توانایی بینهایت دارد افزایش پیدا می کند هر که میگه علم زیاد شود به می اندازه دلایل به وجود خداوند متعال جل, جل و زیاد و ای که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که من رفتم به واسه براق سفر کردم دوستا یک قسمتی که رسیدم براق بر رفرف رف مبدل شد براق رفرف رف تا قسمت دیگه که در روایات آمده شد ای سالهای نوری ای رفرف رف ای براقی که از کلمه برق گرفته شده. اینه کی میفهمید؟ این ابو جهل و ابو لحف احساس نمیکرد چون او در جهالت خود بود ولی امروز یک عالمی که در سانس و تکنولوژی ماسر بیتر میفهمه او باز میفهمه که براق از چی گرفته شده؟ از برق. و راکت ها توسط چی حرکت میکنن و رف رف چی مانم و چرا امواج نوری سال سالهایی که توسط ساینس و تکنولوژی محاصر محاسبه می توسط سالهای نوری محاسبه می وقتی که او وقت پیغمبر سلام می که وقتی ما به میراج رفتم وقتی که پیغمبر پس از میراج آمد حتی زنجیر دروازه شور می خور یک جاهله مثل ابو جهل و ابو نمی اما این روز کسی که سالهای نوری می فامن می فامن که رفتن ده فضا با این سال وقت موتو و حاسبه نمیشه سوی عدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم با بسیار دقتش می فامن. از این خاطر ای چه میگه دانشمند؟ میگه بنابراین زمین شناسان، ریاضی دانان، کیهان نواردان، فیزیک دانان در استحکام بخشیدن به بنیاد علم که همانا بنیاد عظمت خداوندی یگانه است شرکت نمودن این علم کردند کردن؟ بنیاد علم تقویت کردن و این چی میکنه علم شناخت خداوند آسان تر میزازه از این خاطر میگه این علماء و دانشمندان تانسته که بنیاد علم مستحکم بسازن یک عالم غربی بیان میکنن خانم بیتی با من که یک زن امریکاییست و قبلا بر گفتم کتاب را نام اینک خرشید از غرب طلوع کرده. این میگه که پروردگار در قرآن میفرماید که ای مردم اگر شما در راه خدا را قیام نکنید. ما ملت دیگر را از میان شما برای قیام بر می یعنی اگر شما امروز احکام خداوند مد نظر نگیرین امروز شما از قرآن دوری بکنین امروز شما کافر و بج و گمراه امروز شما مزجد و شرکت فابکت تبیکنه جای مسجد و خانههاییط بس ساازن برای خود دوکان جور بکنین ملت دیگه خداوند خداوند اختیار میکنه که اونا نسبت به شما با دانشتر و با فهم میده ترسان، از این خاطر ای خانم بیتی با من چی میگه که؟ میگه این زمینه ها, ها و گویها و دانش ها زیادی را علما و دانشمندان به ارمنگان میآورند دانشمندان مشهور، علمای بزرگ، پزشکان، استادان و بسیاری دیگر از شخصیت های معروف به اسلام رو میآورند. در کجا؟ در خرد. اگر آفتاب اسلام در شرق رو به زوال شده در غرب ای آفتاب درخشش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اونجا که روز به روز تشنگی زیادتر میشه. روز به در اونجا مشکلات زیادتر میشه. اونجا بدبختی زیادتر میشه از خاطر اونا تشنه هستند به قرآن عظیمشان شأن تشنه هستند به هدایت تشنه هستند به راهنمایی که بر از اونها شود یک خانم میگه که من بیشتر از یک هزار کتاب را در زمینه های مختلف از قبیل روانشناسی جامعه شناسی انسان مذهب تاریخ و فلسفه ای این دو پیغمبر یعنی حضرت عیسی و محمد صل وسلم منظوری یافتن حقیقت مطالعه کردم در به آخر چی مگه؟ مگه هر یک از کتاب ها و نظام های روحانی و... که کت... من کردم در چین کتاب های چینایی ها را مطالعه کردم کتاب های جاپانی ها را مطالعه کردم کتاب های اوندوها را مطالعه کردم این کتاب ها چی میکرد؟ اگر پنج سوال من جواب میدن پینجا سوال دیگری در ذهن من پیدا میشد ولی سواله من جواب گفته هم ولی بالاخره سر انجام آن چرا چل سال, در پی، چل سال در پی آن بودن راه برای من آبخشیدن به هر چیز در دنیا هم سال بعد نگه من قرآن یافتم با بگی چل سال بعد من قرآن یافتم با قرآن ایمان آوردم و ای کتاب خواهنم و شکم که اینه کرشید از وقت دلو میکنن بتاسفانم مسلمان هم نتانستن که قرآن از این و شانه به آسانی به دست دیگر را برسانه. مسلمان ها قرآن شریف ها پیش خود نگاه کردن و خودشان هم قدرش ندانستند مثلی که دکتر علی شریعتی نگه به قدری قرآن چی قسم کردن که قرآن بوردن در قبرستانها ها و زیارت ها نگاه کردن برای قرآن چل پینجا پوش میتن عزت قرآن در چل پینجا پوش نیست عزت قرآن در عمل کردن تلاوت قرآن و فهمیدن معنای قرآن است مسلمان در مقابل قرآن وقتی تمدن مسلمان ها به شکست مواجه شد که مسلمان ها به وضعی که معنای قرآن به بفهمه. به میلیون ها حافظ قرآن دارند که دوین دا میلیون ها حافظ قرآن ده نفرشان معنای اصلی قرآن نمی فهمن قرآن هم می ختم میکنه. در دو شو و سه شب ختم میکنه در ماه مبارک رمزان ولی قرآن در وجود از او تأثیر نمیکنه خاطر چی؟ بخاطر خاطر این که ایچ کتاب رو نمیخوانه که بیمانه باشه اگر یک اخبارم که بگیره دید که خطش ماناشو نمیفهمه پس میمانه بگیره یک اخبار دیگه میکنه که زبانش بفهمه و برش واضح باشه کتابه فکایی و خنده را هم که مانایش نفهم کتاب فکایی را هم میخوانه یک دفعه خنده میکنه یک دفعه پیشانوش ترس میشه چی را به مانا تنها قرآن عظیم و وقتی که دفعه قابل قرآن عظیم شان ظلم کردن نماز میخوانه خدا کتش گفت میزنه به گف خدا را نمیفهمه چه سال از عمرش چه میشه الحمدلله رب العالمین ترجمه ایچه نمیفامه ظلم است.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 درست است که لفظ قرآن ثواب دارد. ما از تجارت نیستم که تمام رو سواب جمع کنیم. هج رفتم ثواب جمع کنیم. ختم کردم سواب جمع کنیم. نه ما باید بایت مدنیت اسلامی رو دوباره زنده بکنیم. ما باید پیام قرآن رو در جهان براسانیم. وقتی که ما خود ما شدیم و در پوش بسته کرده و در قبرستان آمدیم و عادت های قبرستان را خانه خود تمام روز جمعه و و شیرین و تلخ تجلیل میکنیم موتو میتونیم که پیام قرآن به جهان برسانیم مولانا چی میگف موازی قرآن مغز را برداشتیم مفهوم شد حکم میشه، پوست را با دیگران بگذاشتیم کسایی که قرآن شریف را با خط تلایی لشتنه کنند قرآن شریف پوش میتن قرآن شریف را زری میتن قرآن شریف را سر قبر مرده دست قاطع دورش میتن و قرآن بزردی بگید پوست را با دیگران بگذاشتیم کار را شما بکنیم ما از قرآن مغزش شما داریم که قرآن برای ما چی میگن حدل علام عبدالمجید زندانی یک عالم است که از جمله قرآنشناسای بسیار معروف است که در ایجاز علمی قرآن در کشورهای عربی بسیار شعرت داره چی میگه؟ میگه ترتیب تنظیم در اجزای عطون به خالق نیاز داره وقتی که تو عطون رو میخانی. وقتی که چند سال پیش ایننی علم ها میگفتن که عطون تجزیه نمیشه امروز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 با خوبی خواهیم دانست که میلیون ها میمون و میلیون ها قلم نمیتوانند قصیده بسازند. اگر شما ببینید میمون ها زیاتر تر از انسان ها شباهت دارند. از این خاطر داروین بگفت که ها داروین چی نگاه پدر کلام مشاهدی است؟ یک روز که سر کله مامازوکر نگستان ما کی اعتقاد دارم بچتون بچی قید دارید به که داروین دفش راست بود. البته بالا قیامتش تو کنه. به اصالت شما باید دی نظر را قبول کن مافتوم چطور نظرم میتونم قبول کنم تو میگی که مادر کلان و پدر کلان ما شادی بود خداش مادر کلان و پدر کلان ترا به شادگی مبارک به تو داشته باشه من میگم مادر کلان ما به هوا بود و پدر کلان حضرت آدم خداوند انسان را کرامت داده تو که خود شادی فکر می و میگی شادی فکر می کنی خدا تو رو شادی داشته باشه ما خداوند انسان خلق کرده ما انسان هستیم گفت تو چرا شادیگری خود سر ما تحمیل میکنی تو برو بابا قواش یارا کدومی باری؟ بعض ما می‌سازیم که دانه خیر است که تو آب می‌گیرم، بعض پایین پیش برادرتون صاف زوده خراب بکو. عناوین. شادی‌ها به اینجا ها زیاد شباحد دارن. از این خاطر داروین می‌گفم که. اصل انسان شادی بیوره و بالاخره چطور کردن اینال عبد زندانی چی میگه میگه تو در باری یک اتم سلکونی این حجراتی که ساخته شده این ها که از ساخته شده این اجزای اتمی که در هر جای وجود داره اگر این طبیعت اتم مثل چیز وارف فکر کنی پس میلیون ها نمی‌تونن این مثل یک قصیده وارف فکر کنی آره میلیون شاد میتونه که یک قصیده بگه یک شعر بگه بفتره به این قسم میلیون ها انسان نمیتونه که این قسم آفتاب بسازن این قسم محتاب بسازن این قسم زراتا بسازن پس کی میشه از اون قسم که شا... میمون‌ها قصیده ساختن می امسان های رو ساختن میتونه تمام دانشمندای امروزی کل زحمتشان در چی بده؟ در یک نقطه بود که امروز افتاره و کشف کردیم امروز معتاب تا کشف کردیم امروز فلانی ستاره رو کشف کردیم امروز فلانی کوه کشف کردیم امروز تیله کشف کردن فلانی چیده تمامشون در کشف هستن نمی‌تونسته که یکیشان امروز یک فابریک تیل سازی بسازن. اگه فابریکی تلسازی ساخته میتونه چه با امریکا میمه در روز ملیون از را بخاطر که تلسازی ببرم با امریکا انتقال بتن تلسازی ساخته نمیتونه خدایی که در کعبه شریفه قرآن از این اشوان نازل کرد اونم خدا در زیر زمین کعبه تلسازی خلق کرد باید ما مسلمان‌ها علو رو میکنیم از اینکه ما مسلمان‌ها قرآن شریف پر پوش میکنیم به عروس و ر بیچاره جونان اگه کم قد بدو میمونن هم غلط است قد قدرس گل بولور قد گل خو یک بلستس دیگه جونونا اگه کم قد دسر میمونن که در اقل این شاهر بیچه را ابرواروس هم توصیف شد اگر آرز بپرامه که من را درشنام میتد و بعد خود نمیمانه امود سازندر از تا خود میکشه جانان اگر که قدت بدل میمانه یا یک بلسست را رفتنک های داغ و بدل میمانه که میری دل ما رو داغ داغ میکنی باید باغ باغ میکن دکتر توماس دیوید چارکس متخصص فلسفه و کیمیا دکتر تومس دیویر چارلز متخصص فلسفه و شیمی و رئیس تحقیقات شرکت شیمیایی کلاکس میگه من معتقدم سر یک آلی میگه پا میگم من معتقدم در طبیعت همه چیز از روی مشیت و نظم انجام گرفتن و نگیرد و لازمه این نظم مشیت این است که از جانب یک آقل و صاحب اراده باشد و من آن را خدا می دانم. نیדיה قاله می بسیار بزرگوار که رئیس تحقیقات شرکت شیمیایی کلکس یعنی مامیه که می‌بینیم گفت طبیعت همه چیز به یک نظم در حرکت است وقتی که نظم داره این نظم باید کی ترتیب و تنظیم کنه یک کسی باشه که او تنظیم بکنه و صلاحیت ازیره داشته باشه و با دانش باشه و عالم باشه و عالم غیب و شهاده باشه میگه من اینمی کسی که اینمی ترتیب و تنظیم جور کرده من اینمی رو نامشه خدا میبانم به وجود خداوند اعتراف میکنم پس این عالم به وجود خداون به اساس علم خود اعتراف میکنه دکتر جان عدل بولر دکتور از در فلسفه ای اتمی در دانشگاه اندیابا و استاد شیمی از کالج اندرسون میگوید در طبیعت به هر سو نظم و مشیت نمایان است گویی دنیا سوی هدف و مقصد مشخص سوق داده می شود و این معنی در عالم اتم کاملا روشن است این قسم که دنیا در حرکت است بهین همی شکل اتم در حرکت است خب تمام اتم از هیدروژن گرفته تا او یورانیان از روی یک مدل مودل با وجود آمدند زیرا انگامی که داره اطلاعات ما را جمع به الکترون ها و پروتون‌هایی که اناصر مختلف را تشکیل دارن بیشتر می شود ما بیشتر متوجه نظام اماهنگی جهان می در خاتمه گفت خود چی میگم؟ میگم ما بجایی در نظر گرفتن کیفیت آفریدگار او انسان تو داره دا می خالق فکر کنی. در اری خالق فکر نکو اوض زاید شمردن خدا باید او را در میان نظام جهان ببینیم و آثار و هاش را ستایش کنیم بشر می تواند مشغولات طبیعت را کشف و در کند ولی نهمی تواند قوانین طبیعی را خلقو ایجاد نماید و تنها خداست که می تواند قوانین طبیعت را وزن و ایجاد کنند. تو انسان بسیار ضعیف هستی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 دفتر اسم معرفت کردگار هر ورقه ای که ببینی هر برگ درخته که ببینی بعد در منزل سیوم بعد در درخت در منزل سوم رسیدم تو بیچاره انسان وقتی که می منزل سیوم او بری میری واتر پمپ یا که صاف میبری یا مش که در پشت نمی کنی اما بالا می خیداری دو آخرین درخت که در منزل سیوم رسید آوه از زمین که بالا می کنن حتما یک واتر در بین درخت است این واتر پمپه که کردن هر قشکی خلق کردن، کی به بعد میرسونه اگه بد می‌بووت کنه درخت‌ها است بهش خوش می‌شه نمی‌شه است خوش می‌شه اما او اگه داره یک برد میلیون برگ برای هر میلیون برگ میلیون قطره آب می‌رسونه <تصفيق> یک دانشمند دیگه به نام روئین پاستور روین پاستور کسی بود که برای اولین بار میکروب کش کشف کرد برای اولین بار میکروب روین پاستور کشف کرد وقتی که ازو پرسان کردم که خواب وای پاستور تو که میکروب کشف کردی وره بیست به چند کار؟ قبل از تاریخ، بعد از تاریخ، افلاطون، سقراط فیلسوف بودند. کدام از این فیلسوفها می‌کره با کاش کرد بود، کاش نکرده بود؟ کی آماد کشف کرد؟ نوی پاسول آماد کاش کرد. پس افلاطون، بحث می‌کنه ناموس فیلسوف است. سقراط بحث می‌کنه فیلسوف بودن خود می‌کره با نامش نه بیچاره. می‌کره نه مشناخت. کی می‌کره با کرد؟ در قرن نبیست. پاستور آمد میکروب کش کرد وقتی که رو پرسان کردن وقتی که تو میکروبه کشف کردی با وجود خدا چی نظر داری گفت با این کشف سن که پاستور بید. نه در خیال گرفتیم هر کس بازی ورکار رو میخواست کافی کنه برش میتوم. در اینجا در قوض گرفتیم با این کشف عقیده من به خدا صد چندان شده است چند چند <تصفيق> یعنی ست فی ست ما با وجود خداوند متعال جل جلوه ایمان آوردیم که ما انسانها که فیلسوفا که در باری آسمان فکر میکردیم از خانه خود خبر بداشتیم فالبین <تصفيق> مگشتش تا بود آمد باشه پلیس گفتی پلیس هم چی گفتی؟ پولیس گفتی چی گفتی؟ فالبین جان؟ با خانم ما کلام کسی سر خانم ما تجاوز کرده؟ خب گفتم الاله به دریای شاد و چمشیران از آسمان و از ستاره ها و از مریخ و از کل چیز خبر داری از خودت خبر نداری از که شد. شد. شد. شد. از و علام مثل قابضات از میکروب کتابنس چاپتر میکروب 15 شب خورده از میکروبت خبر نداری. نامشا بود فایل ما احترامش می کنیم بعضی نظریات چیزایی داره میکروب کرد گفت که با خدا این قدر زنیف و عجز هستم که تا که میکروسکوپ نبود من ها تانسته میکروبه کشف لکنم پس نه چیزا این میکروب ها زندگی میکنن تولاد تناسل میکنن زیاد و کم میشن یا بالاخره سبب امراض میشن ثباب چیزا بشن و یاره که ببینیم زندگی دارن تولاد و تناسل دارن زندگی و مرد دارن کل این چیزا را دارم و دهی قبل از پیش قبل بارز میلاد جس کان بول از میلودو چند قله قبل از این هیچ کسی رو نمیشنا معلوم میشه که انسان بسیار ضعیف است و روز بر روز علم انسان زیاد میشه از این خاطر با کشف کردن این میکروب رپاستور با وجود خداوند متعال جل جلاله 100 درصد عقیدش زیاد میشه دیکارت یک فیلسوف معاصر است به نام دیکارت نظریات زیاد داره وقتی که دیکارت به انسان میگه نظریه تو درباره خدا چیست فلسوف بسیار کساس فیلسوف نما مثل فلسفه خاندیم چی فلسفه را خاندیم چهار تا کتاب هزاریت شب خانده خدا فیلسف میگر این آنو فیلسف به این همه شکنه آنو خدا من فیلسف بانم دیکارت فیلسف است فیلسف اونو است یکی اوز یکی کسی من را گفت که آلم باید دعوت کرد من گفتم برادرگل از نگاه اسلام آلم کسیست که علمه شروع به وحدانیت خداوند برساند تو که لا اله الله محمد رسول الله میگی و میفهمی که خداوند یکیس، گوه پرستش نمیکنی شادی رو پرستش نمیکنی امسان دیگه رو پرستش نمیکنی تو بزرگترین عالم هستی یعنی نفر بسیار پروفیسور است. یک دفعه خدا در جهالت میزنند چیچه حالت میزنه؟ من صور پروفیسور هندیستان بسیار عالم هستم نه نه که تابع و لکاهی یکی آهی و کیای آه آخر باز ما برای گل سجده میکنم پس خود جاهل ساب اخو باز عالم گفتنمشه اگر تو عالم میبودی ادیعقل این نیت ترا شخصیت میداد و هم میفهدونی که من این سا واسم کرامت دارم ای گل برای من برای من چیز شده؟ خلق شده؟ یا ما برای و و ما برای گاو خلق شدیم از این خاطر گوه آوره ببینیم اما تو نر نر میگردن در روی های بازار در این دوستان وار این دوستانی ها شکم شان چسبیده از گشنگی میمره این شد دین تو گداری دیواریت کو خوب میکنی از گشنگی بوکیس مرته ها بوکس مرتے با تو ما علم تو الگ کی بھی دی قسم دست سر زلات مارے این ایک ما وجہ مار بر. گوه برش خدا مری کے گاوا برس مقدس خدا برس خلق درد بخورم یا نمیخورم یا خوب بلا با پس خب دیگر چی میگرم؟ سر کنید میگن. من با درک نقص وجود خودم هستی ذات کامل را احساس میکنم دیکارت میگه که ما وقتی که به طرف وجود خود میبینم باری اعضای بدن خود فکر میکنم میبینم که من چقدر آجز و بیچاره و ناتوان هستم با اینمی آجزی و بیچارگی و ناتوانی خود احساس میکنم که نسبت به من ذات قویل وجود داره که این آجزی ها رو نداره و اون ذات خدامنده متعال جلی چلوز بسید <تصفح> <تصفح> <تصفح> که ما شما دار وقتی گذشته فراهان چه میگه انا ربکم رب الاعلی الاهلا ما خدای بزرگ شماستم زمش برشک فزیزم فراهان جوان صدقیت شوام اون شکر که دندان در بودی تاسوب نوتک میزدی تو رب به اصفل هم شده نمیتانی چطور بود رب به اهلا خدا میگیری؟ تویش خدا شده نمیتانی از تو کنه رو مرخ نخوبه است مریض بود تا که خونه چیخو تو خدا یک مریضی تا صبح چیخ زده میرفتی تو, تو خدا من رو شناستم تو چرا تو کارمی کنی زن فرام مسلمان شد چون بید که کسی که دعای خدایی میکنه از علم خودکار گرفت و دیدون کسی که ادعای خدایی میکنه خودش جاهل مطلق خودش زدیف است. از این خاطر دیکارت میگه من با درک نقص وجود خودم دیدم که در وجودم نقصان است. احساس کردم چیست هستی ذات کامل را احساس میکنم که ذات کامل وجود داره که نقصان نداره کیس؟ الله جل جلوه هست میوتن چی میگم؟ نیوتن یک عالم دیگه است، چی نگه؟ درباره آفریدگار شک نداشته باشه درباره خدا او مردم، شک نکنین نیوتن بزرگترین علما هست. کسایی که در سانس تکنولوژی دسترسی دارند، اصطابه مکتب و معلمین یا خوبتر مشخص نیده تن چی میگن دربار آفریدگار شک نداشته باشید زیرا که قابل تصور نیست که اساس و زیر بنای این هستی تصادف محض باشه او مردم بهشک نکنین من هست تا معلم بزرگ هستم من بسیار تخصص دارم متان که این نظمه که در دنیا هست اینمتوننت تصادبی باشه اگر تصادفی میبود بوده و بالا به یک سرراحتت می بود بر چشمش تصادبی مفتاد مجبور بود چشمیکی در پشت کلج باشه یا چشمش در روی باشه چشمش در وقت پشتش باشد خطا تصادف است اما این که کلگی چشمش در رویش هست اعضای بدنش منظم است. یک روز لطفا در ماینات تلویزیونی برو یک چند در یک در مصرف کن بر نفر برو بر ایلتراسان مگم چی مگم بر او برو که مسئول سه به تو امی وسیله یک به در شکم مبال دیگه که در دا داخلت چی حال است یک شاعر میگه بدرونت چی شاعر معیمنه است قصر شیرین و ملک فرهاد است تو داخلت داخل شکمت سایگو که شاعر معیمنه آره چی بگم شرکت است؟ چی فابریکا هاست قصر شیرین و ملک فرهاد در دا داخل شکمتوست فابریکی خونسازی است 26 سال برات خون تولید میکنم یک زبانچه صحبتی که 10 دارن اون زبانچه ما و شما بسیاری کسا هستی وقتی که نان میخوریم در جریان نان خوردن میزنیم وقتی که گپ زدیم نان به گلو میره بعضی کسر میگه این مردمایی که به حساب کلاسیک هستن باید میگه کوام کس ترا یاد کرد این است از نگاه علم و, و قسمت وجود انسان دو مال است یک ساعت و هوا را به تو انتقال میتن تنفس میکنی و نلکه بینید که اینجا هسته ایچه یکی فرداره غذا که میخوری غذا انتقال میده با کجا به طرف این بیدید ایمان این یک نلکه این طرف هست این دیگه این طرف است؟ متوجه شده ایمان بگه به سر یک زبان چنده که اوتوماتیک هست که هوا رای شش باز میکنه وقتی که غزامت رای دگر باز میکنه اگر در جریان گرد زدن نار خوردن گردان بزنیم هوا او از دوش یک جایه میشه وقتی که این 24 اگر یک دقیقه کار نکنه یک قطفانان در شد صرفت کنه رو تا که بپره اگر تو داخل ششبره به حلاکت انسان مبادل میشه. پس اینمی نلکه هکی اینمی زبانچه هکی که در بین تو اتوماتیک کار میکنن و حکمی کار میکنن ذات هست که ایرا الله جلاله جلو را تنظیم و ترتیب کردن برکسون فلسفه فرانسوی چی میگه میگه ممکن است گروه های انسانی فاقد علم فنون و فلسفه یافت شوند اما هرگز فاقد دین پیدا نشدن این میگه من از یک عالم من از یک فلسوف میفهمم که هیچ کسی بدون دین نیست شاید یک نفر فلسفه نفهمد شاید یک نفر جویل باشه شاید یک نفر علم نداشته باشه اما بیدون دین هرگز یافت نشدن کس، کسی که کسی که بدون دین است مگه از انسانیت برآمد است را گفتیازی کسی که بدون دین است